بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعای شام فراز بیستم فجعنا من ارض من مر عليه الليل و من جنبه خلقك اشكرهم لما أوليت من عاميك وعقبامهم بما شرعت من شرائيك و اما حذرت من نحیه کیون خدای ما رو از خوشبودترین آفری لگاندت که شب و روز بر اونها گذشته قرار بده و از شبگذارترین اونها بر مهمتی که ارزانی داشتی و پایدارترین آنها به آینی که مقدر نموده ای و خوددارترین ایشان از حرام هایی که از اونها بیم داده بعدش هم بخونید اللهم اني اشهدك وكافبك بك و اشهد سماك و ومن و من ملائكتك من و سائر خلقك في يومي هذا و ساعتی هذه و هذه مستقري هذا اني اشحد أنك انت الله الذي لا اله الا انت قائم بالقيض عدل بالحق باوفم بل عباد مالی کل مول رحیمون بسم الله الرحمن الرحیم و به نستاین و هو خیر موافق و مائین صمت صلات و صم السلام اله اشرف خلقه و مبلغ رسالاته حبیب غلوبنا و تبیب نخوسنا حبیل غاسم محمد سلام آلیم و حلیم حتی بین نبرار و رحمت الله ال ماه عامین لاسی ما ماامنا و باعدنا امید قبولی تات و توفیر برای ادامه حواات این ماه ماه بسیار مبارک و شریفی است هر، قدمی هر قلمی هر عبادتی فردی یا اجتماعی خیر و برکتش مضاعب هست حتی خواب و تنفس رو هم فرمودن که در این ماه سباب عبادت داره ناموکم پیهه تسبیح انفاس و گمب تسبیح نوم و کم اباده بسیار ماه مبارکی شب و روزشن فرق نمی کنیم انشالله خدا توپیو بده بتونیم در باقی موله از این ایام و لیالی اونو استفاده بجا و به حق رو داشته باشیم سلواتی نایت کنیم اللہ موسیقی و صحبت در دعای صبحگاهان و شامگاهان هست در واقع دعای یوم و لیله است دعایی که در روز و در شبانگاه و خونده بشه به امام سجا سالمون این دعا رو اول هر صبح و ابتدای هر شب میخونند در این دعا مزامین پرخیرو رو بسیار وزینی وجود داره و به ما یاد میده که چطور قدر زمان رو بدونیم زمان نعمت بزرگیست این نعمت رو باید شکرانش رو به هر نعمتی که خدا داده یه حق خاصی رو به انسان میاره نعمت بدون بر پایه حق اون نعمت وجود نداره وقتی نعمتی از طرف خدا ارزانی شده و انسان آگاهی پیدا میکنه به اون نعمت باید ببینه حق اون نعمت چگونه انجام میشه لازم شد که ما ها نمیتونیم تشخیص بدیم حق نعمت چقدر هست و چگونه هست خدای متعال هر نعمتری که داده شکرانش هم توضیح داده چگونه هست و باید چی کرد و چه برخوردی داشت تا اه... کفران نعمت نشه چرا که اگر ما اونجوری که باید حق نعمت رو به جا خداوند نعمت رو افزون میکنه یکی از های بزرگ نعمت حیاته نعمت زنده بودن در زمان حال و آنی که هستیم نعمت تنفس و بود رو داریم خیلی نعمت بزرگی اگرچه توجه نداریم اما نعمت بسیار بزرگی است ظرف کنون ما و آناتی که درش به سر در حال در حال حاضر ظرف همه خوبی هست زرف عمل به همه خیرات و اعمال درست و صحیح هست اگر ما در زمانی که به سر در این آنی که درش به سر از بدی دوری کنیم حق زمان رو به آوردیم میشین مستاق شاکر اگر دستوری برسید در اون آن و زمان انسان عمل کنه بایدی رسید باید رو دنبال کنه اگر بایدی نبود مراقب باشه که به گناه نزدیک نشه این قدشناسی زمان و حالی هستش که درش به سر میبرید امام سجاد سلامون علی در این بندهایی هایی که شد و همه گوش دادیم همه موجودات رو همه هستی رو و از همه مهمتر وجود خدای متعال رو که هستی مطلق هست و همه جا رو برای گرفته سنتوسو نداره همه جا سنتوسوی خداست یمین و شمال و فوق و تحت و همه جا پس همه الله. این خدای با این عظمت و با این وجود همه زمانی همه مکانی و مطلقش حضرت ایشون رو شاهد میگیره و همه موجوداتی که در بین آسمان و زمین هست هم از ملایکه زمینی ملایکه آسمانی موجوداتی که ما نمی بینیم ولی هستن موجوداتی که هستیشون به این دیده میشه همه رو شاهد میگیره. اللهم می اشهدک و کرد و بی خدایا من تو رو شاهد میگیرم که شهادت تو کافیه این معناش این هست که خدای متعال در همه هستی وجود داره وجودش مطلقه در مکانی وجود نداره در مکان دیگه مثلا نباشه وزا میگه وجود تو چون همه مکانی و همه زمانیه من اون وجود رو شاهد میگیرم گیرم و این کافیه برای من با این حال میفرماید و اش سماعک و اشهد و سماک و ارزک آسمان و زمین را هم شاهد می ناظر می گیرم نکته خاصی داره حضرت مطلب خیلی مهم می داره که خدا رو بر اون شاهد میگیره، آسمان و زمین و هر چی ما بین آسمان و زمین هست هر چی ساکن در بین آسمان ها زمین هست در همین صحیفی داره دای سوم دعای, دعای ملکه الهی هست همد میکنه نعمت ملائکه رو در اونجا داره که ملائکه 20 گروه هن. که دو قسم هستند یه آسمانی آسمانییت ده گروهیشون آسمانی هستند یه قسمشون هم زمینی هم که ده گروه هن. نا کارهای آسمان و زمین و هرانچه بین این دو هست رو انجام میدن مثلا یکی از کارهایی که دارن این هست که در صبح و شب در وقت بیداری و در وقت خواب چهار تا ملکه هستن که مراقب ما هستن پست وظیفه میکنن ملائکه صبحگاه میان جاشونو میدن به ملائكهای که از شب تا به صبح به ظاهر ما خواب بودیم ولی اونها مراقب بودند هم مراقب جسم مادی ما هستند در روایت داره هم مراقب اعمال ما هستند اونها رغیباند در واقع مراقباند با دقت و دقتشون هم دقت آگاهانه هست، بسیر دیدن دید دارن به خوبی اعمال ما رو زیر نظر دارم. ما توجه نداریم، فکر میکنیم یه جایی مثلا کسی نیست، نازلی نیست، چشمی نیست که ما رو ببینه، حالا دیگه آزادی، اونا رو رقیب هم. صبح و شام مراقب ما هستند. یه ذره اگه فکر کنیم، یکم میترسیم. که این دو ما رو میبینند در روایت هست که وقتی وارد بر مکانی میشید که کسی نیست به ظاهر سلام کنید سلام مستحبه خب کسی نیست که به کی سلام کنید اگر کسی باشه سلام مستحبه جوابش وقت واجبه داره که ملائک پوج در خانه که نماز خونده میشه در خانه که قرآن خونده میشه، وجود دارن استشمام میکنن خیلی میبرن از اون فضایی که در طول روز مثلا یک بار صاحب خانه قرآن طلاوت کرده نماز خونده یادی کرده از خدای متعال و ذکری داشته وقتی شما وارد میشه سلام میکنی اونها جواب میدن سلام ما برای کسب خیره سلام اونها و جواب اونها سلم و سلامت اونها وقتی سلام میکنن عین سلامت برای ما عین خیر و برکت برای ما ها رضا اینجور نیست که ما فکر میکنیم یک تلاتومی در این عالم هست هنگامی برقرار هست مثلا در حدیث کسا زیاد گوش کردید، قرایت کردید، خوندید وقتی این حدیث خونده میشه پیامبر فرمود که هفت به همون ملایکه همین ملایکه جمع میشن اینقدر جمع میشن که انگار جا بهشون تنگ میشه که این حدیث رو گوش بدن ما حس نمی کنیم. ما با حواس پنجگانه همه همین موجوداتی که پیرامونمون هست حس میکنیم، لمس میکنیم، یا میبینیم، میشنبیم یه حس دیگه هم هست که اگر انسان با خدای متعال بیشتر اونس بگیره با پرامینش بیشتر اونس عملی پیدا کنه اون چشم و گوش هم باز میشه و میبینه، اون چرا که هست میبینه رضا پرمایش کرد که برای ما یه همچین موجوداتی وجود داره در آسمان، در زمین، هرشن ما به ظاهر نمیبینیم همه اینها رو شاهد میگیره همه مخلوقات رو به سایر خلقی که پیام می هازا و ساعتی هازهی همه موجوداتی که ما میبینیم و نمیبینیم در این ساعت و در این روزی که درش هستیم، در این شبی که درش هستیم و مستقلیم در اون همه رو من شهادت میگیرم خب شهادت میگیری که چی؟ شاهد می گیری بر کارش که میخواد انجام بده میگه همه شما ها شاهد باشین من میخوام این کار را انجام بدن انی اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت خود خدا رو شاهد می که به همه آنچه هست که بدانید من شهادت میدم به وحدانیت خدایی که هیچ الهی غیر از اون نیست لا اله لا انت هیچ هوایی هیچ وجودی بتونه انسان رو تامین کنه یا پیرامون ما رو تامین کنه وجود نداره فقط خدا من شهادت میدم به وحدانیت خدا همه رو شاهد میگیری برای اینکه بگی همچین دقتی رو من دارم همچین باوری رو من دارم ماها وقتی این عبارات رو میگیم که لا اله الا انت سبحانک مثلا خدایا بجز تو هیچ نیست و تو منزهی از هر نقصی تلفظ میکنی امام علیه السلام به جهت اسمتی که داره و جایگاه و مقامی که داره با باور داره میگه ما اگر بخوایم بحث هستی رو شاهد ببینید بر بهدانیت خدای متعال باید راه باور وجود باری رو پیمایش کنیم راهش کلاس رفتن و درس خوندن و مطالعه کردن و براهین انی و لمی و نمیدونم برهان صدیقین و امثال این ها رو هر چقدر هم باور بر ما نمیاره آگاهی میاره میتونیم در بر مقابل کسایی که خدا را قبول ندارن منکرن دلیل بیاریم بر وجود خدا و شک و شبهه و بر از دیگران دور کنیم اما باور غیر از آگاهی، باور بجز عمل و بجوز گوش به پرمان خدا دادن که همون دوری از مخالفت پرمانش هست ایجاد نمیشه ما در تبلیستان ها در مدرسه ها در دانشگاه ها توحید رو می کنیم. ولی توحید مستند به ادله عقلی دلایل عقلی برای راهین عقلی میاریم بر وجود خدا این خوبه برای رد منکرین برای رفع شبهه‌ای که شاید مثلا ملهدین اونهای که خدا را قبول ندارن و به ذهن ها میندازن که خدایی نیست دلایل عقلی میتونه ثابت کنه که حرف اونها نادرسته اما اون چیزی که ایمانزاز باورزاز های نقلیه ما باید معارف نقلی رو باش آشنا بشیم اگر میخوایم به توهید باور پیدا کنیم نه آگاهی فقط باید با سپات خدای متعال آشنا بشیم با صفات خدا که عین اسامیش هست اون اسمایی که در جوشن کبیر می این شبها در شب های اون اسمای خدا هست ولی در واقع صفات خداست به زاد امام سجاد هم به این گونه عمل میکنه و همه عالم رو و از همه فراتر خدای متعال رو شاهد میگیره که خدا یه همشه است من باورم نسبت به خدا با براهین و عدل و پیدا نشده. با این صفات من خدا رو باور کردم. قایمون بالقسط و از همه وجودش خست و عدل. عدلون پل حکم. وقتی قراره خوکمی بده در مورد چیزی این عطل هست خوکمیشه رعوفم بلیباد نسبت به بندگانش رعوف هست مالک کل ملک مالک همه چیزه هیچ چیز موجود نیست مگر این که ملک خداست بگی من که همیشه خدایی رو شراد باشین که همشه خدایی رو بابردارم رحیم بالخلق من خدایی را قبول دارم که مهربانترین مهربانان نسبت به مخلوقاتشه به موسیی کلیم فرمایش کرد که یا موسی برو به بندگان من بگو من از مادر به شماها مهربانترم مادر عند مهربانی دیگه در روی زمین خدای مهربانی میگه از اون من مهربانترم به شما اگر ما با خدای متعال از راه ثپاتش آشنا بشیم خدا رو باور میکنیم راهش این هست راهش اینه که ما مخالفت فرمانش رو بیش نزدیک نشیم همین خیلی لازم نیست مثلا اهل از کار و مستحبات و حتما نماز شب خونده بشه نماز جفر تیار اونده بشه به همسال اینجا عبادات بسیار وزین و مهم ولی مستحب نه راهش اینه که وقتی مخالفت فرمانی پیش میاد با دست خودمون بهش نزدیک نشه مقتضی به مقدمه گناه رو با اختیار نچینی این تنها راه و راه منحسن هست هیچ راه دیگه ای نداره اگر کسی میخواد خداباوری پیدا کنه فقط راهش همینه نه اینکه گناه نکنه به گناه نزدیک نشه این آسانه اینهایی که میگن ما خدا پرستیم تعبیر بهترش اینه باید دنبال خداباوری بود خداباور بشیم پرستش خدا این باورمندی خداست و این پرستش و خداباوری فقط از ترک گناه حاصل میشه ولکه این داشتیم در همین اصر خودمون اوائل انقلاب واقعا اگر مثلا من از شخصی مثل آیتولا خوشبخ به نقل از مرمو الله مهدوی کنی نشنیده بودم اصلا بابر نمی کردن این که آقای مهدوی خوبصم نیکی از اساتید از کمالین اورفای زمان یعنی استاد کل ارفان نظری بودن در فلسفه دیگه آخرش بودش امسال آی ایت الله جبادی ایت الله حسنزاده شاگردی ایشون رو کردن و مفتخر بودن که یه همشه استادی رو تونستان درک کنن آی مهدوی نقل میکنه مریض شده بود این استاد چون استاد ما بود و پیشش ترس خونده بود حق به گردنمون داشت رفتیم اعادتش مریضی که با همون مریضی هم از دنیا رفت روی تخت خوابیده بود منم پاینه تختش آی مهدوی میگه نشسته بودم گفتم چند دقیقه بشینم زود برم که به عسرو حرج نیبته مستحب به مریض رو سر بزنی کوتاه مختصر همینطور که نشسته بودم گفتم یکی دو دقیقه بشینم بعد از حال نگاهم غیر اختیاری گفتم به بالا استاد دیدم یه عکس دخترمثل بیذای خیلی غیرعادی بود برام. همینون که نگاه کردم دیدم عکس مثل مناسب نیست، سرمو رو به یر متوجه شد. نگاش به من او رو بهش نشسته بودن. خندید خندید گفتن سبیه هستن دختران. در فرانسه، ملکی زیبایی جهان شده و دیدم خیلی عادی صحبت میکنه یه لحظه به زهنم اومد نکنه هزیون میگه حالش خوب نیست دو این ها بعد دیدم خب این عکس که بالا سرشه اون عکس رو داره میگه که سبیه هستن و با افتخار داره میگه مثلا دلیه همچین مسابقه خب ایشون استاد فلسفه حکمت ایرپان نظری آخرش این آقابت علم و آگاهی خوبه ولی کافی نیست علم آگاهی ارزشه اما این ارزش تا چه حد ما رو به خیر و صلاح و سلم و سلامت میبره این باید روش دقت کرد اون چیزی که میتونه ما رو رهایی ببخشه از ظلمات، از تاریکی، از حیرانی، از معیشت زنگ، فقط عمله. اون هم نه عمل زیاد، فقط با اختیار نزدیک به گناه نشیم، همین. اگر این یه قدم رو برداریم، خدای متعال ده قدم میاد طرف ما. داره در روایت، اگه یه وجب بیای من ده وجب میام. اگر یک قدم بیاییم، من ده قدم میام. این یک قدم ماست بیشتر از این هم ارزه نداریم. یعنی با اختیار به طرف گناه نداریم. موبایل دستمون رو بیزاریم کنار. وقتی میریم تو فکری بیزاریم کنار. میدونیم از این مسیر در این فضا در میون این رپاقا قرار بگیریم مقدمه گناه. دوری کنیم. یا دوری کنن میگه خودش رفته اگر انسان مسمم بشه که از گناهان با اختیار دوری کنه خدا کمکش میکنه خدا را خیرش هست و به صلاحش متناسب با نیازی که داره کمکش میکنه خدا را قسم میدم به رحمانیتش به مالکیت. حضرت حق و به حقانیتش به همه انبیاه گرامش ملایکی مقربینش خواسته نبی خاتم به همه انتهار علیهم مسلم به ما توفیق بده تقوا که همون پرهیز از گناه هست نزدیک نشدن به گناه هست مقدمه و مقتضی گناه رو با اختیار نشیدن هست بتونیم هر چه بهتر این روند تسغوار رو کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد محمد